زندگی پر از لحظه هاست لحظه های پیش رو لحظه های پر از برخوردهای معمولی یه سلام و علیک یه ببخشید یه خداحافظ و لحظه های پر از اتفاقات بزرگ و کوچیک اتفاقایی که میتونن رازای بزرگی رو برملا کنن بعضی یه اتفاق بد میتونه اونطور که به نظر میرسه واقعا بد نباشه مرده استم این چه طرز رانندگیه؟ آقا رو ترمز. من راستیشی نفر فر یوا پرید رو جلوی ماشین من تو... من عذرخواهی میکنم ببخشید خواهش میکنم البته تقصیر من بود من باید این فاصلم رو میکردم نه من اشتباه کردم که زدم رو ترمز من عذرخواهی میکنم بچا چه حرف میزنی خب یکی پرید جلوی ماشین باید ترمز میکردی نه فدای سرتون فوقش میزدم ليش میکردم میفتدم زنده میرفتم اعدام میشدم تا این باشه دیگه نه پرید جلوی ماشین من خلاصه من میکنم ممنونم بعض وقتا شبیه همون اتفاق میتونه تبدیل به کابوس زندگی آدم باشه عارف نشو ببین چه طرز رواندگیه زبون کردی باشین راحت میشینش این پشت ماشین جلکی می‌زنن رو ترمز آره بابا خودت برو گواهی نامه شده عین پفک که دست هر بچه یه دونه میدن درکاست تو بایید این حرفو ولی اینو راست میگی گواهی نامه شده عین خرسخندی دست هر بچه دماغویه به من میگی بچه تو بالا دم... دماغوی... این, بس... كم... زندگی... این که چرا گفتم کابوس زندگی کم کم متوجه میشی کمک میخوای؟ بعضی وقتا اتفاق خاصی نمیفته یه برخورد محبت همیزه ولی منجر به یه دوستی دائمی میشه سلام, سلام. پنچهر شده نمیتونم پنچهر کنم اب نداره من کمکت دارم زاپاسد کو خوش کارم دستت برمید من و اون آقای جوان و همینطور برخورد ساده مادرمون رسید به یه عمر خیل. به همین ساده که کیفتو برداشتی؟ آره خیلی خواه خیلی خواه خیلی بایستی بی زحمت در باز بکنیم خواهش می‌کنم وام فهم برو برو سلام سلام بح بح. خیلی خیلی خوش اومدید بفرمایید خواهش بدم بفرمایید بفرما. یادتونو گفتم بعضی اتفاقای ساده میشه کابوس زندگی آدم تو اینجا چیکار می‌کنی من اینجا چیکار میکنم شما نشستید زیر پای پسر من تا بیا رو بگیری. من زیر پای پسر دشستم یا شما دختر منو گل زدین چی کار میکنی منصوب من برقا بیرون ب... ببخشید شما همدیگره میشنسید زشت حوشنگینا مهمونن خانوم من همچی مهمونی نمیخوام باید تیپا بیدستم بیرون باره میدون آقا بابا چیه ازیاب خانوم پرازندی هزار باشد آقا هستم من با این خانواده وصلت نمی چیزی که زیاده دخته بفرما بیرون آقا ببخشید مثل که سوی تفاهمی شده من از خواهی میکنم ببخشید بفرما خانو بفرما ببخشید محتب جم خواهش میکنم شما ببخشید. اینا کیه تو محرفی میکنی مر... چیره اینجوری کردی مادم قطعی بود مرد. آقا منسور دارم فکر میکنم مشکلی پیش اومده شمسی جون دست بده لنم مشکل زیاده فقط بگو از کدومش بگم شما از هر کدومی که دلتون میخواد بگیم ولی جسارتا روم به دیوار من آقای شمس هستم ببین شمسی جون من اصلا حسلشو ندارم گیر نده آقا منصور، جسالتاً روم به دیوار گیر دادن اصلا واجی قشنگی نیست بهتر که بگیم پیله نکنید در زن شمسی اسم زنون است من اونو که تو شناستامته میگم نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد تمام جسالتاً روم به دیوار آقا منصور من اون شناستامه رو نابودش میکنم جسالتاً روم به دیوار من کلی کار دارم شما اینجا گیر دادی شمسی یا شمسی اجازه اجاز من برم. ده فرمه دیوارن کردی تو کسالتن روم به دیوار چایی توی سرد شد سامالکم آقا بوشی بوشی و زهر مار شونم آقا, آقا. شوونم. آقا. شوونم. آقا. شوونم. کردی آقا. آقا. خونه رو نشون دادیم به مشتری آره آقا چون نشون دادم آره کوف خب چی شد میگم آقا یارو گفت که را دست ما نیست درست صحبت کن ببینم چی گفت چون آقا همینجوری گفت یعنی گفت این پنجره هاش جغله است من پنجره درستر میخوام این به درد من نمیخوره خب تو چی گفتی؟ منم گفتم برو بینیم با جل زن وقتش گفتم چون آقا خرابش کردم گفتم بیش این چی؟ تا برد بسازم اول گفتی برو ببینم با بعدم بشی؟ آقا همینجوری؟ آقا تو چه ای آدم بشی؟ بابا این بعد آپارتوان سازی میکنه تو هنوز ادبیات صفر آقا شما اصلا آقا اونم همین جوریه اصلا ما جننمون همین فرمیه یعنی فرمتمون این شکلیه چش نپری بابا اینکه میسمند دوت کو آقا فرمت خارجی مولا خوب گفتم شی بابا ببنو فکتو آقا ما رو همین جوری خراب میکنی جون آقا توره مشتری خراب نباشه بابا ببنو فکتو اون آقا جلو مشتری خراب نکن من دارم میرم اینجا کار دارم بردیگه اورا معمور ملت ها این مالیه کلا بردا داریم اینجا حواست جمع باشه بعد حرف نزنید بیالا جو. آقا جون آقا چون آقا کارت کارتیش میکنم اصلا لازم نکرید وارد بشید سلام چون جواب سلام واجب سلام حالا برو بیرون که نمیخوام ببینم بهات کار داره واگرنه اگه سند نصف زمینا شیرازم اینجا افتاده بود و عمرن نمیومدام بردار ولی من حرف ندارم لحظ بازی نکن راجع بچه ها میخوام با حرف بزنم درست نیست اونو به پای ما بسوزن حالا میاد آقوچولو رو بفز دنبال نخوصی ها میخوام بشینی مرد و مردونی دو هم با هم صحبت کن باشه برو باشه برو که او پای اون پایینه او اون سخنونی که دارم میسازم فروشیه که فایلش کنیم برو شمالیه جنوب یقا برو درگیر نشو باش برو باشه باشه منو تو دشمن خونی درست ولی بچه ها این وسط چه گناهی دارن ببین من نمیذارم دخترم بیاد تو خونه تو شیر فهم شدی گازور میس بیان خونه ما یه خونه براشون میگیری میرن سر خونه زندگی خودشون ببین هوشان جون آقا هوشان زود پس خاله میشه خیلی خوب جناب آقای هوشان خان خوب شد بابا این دوتا تا هم همدیگه رو میخوان مادراشون هم پاشونو کردن تو یک کاف للا این دو تا بعد با هم بعد. میکنن بدبخت زنزلی بله من زنزلیلم شما سالار مردیم خوبه؟ من میگم بیا یه قصه سره هم کنیم تحبیلشون بدیم چه میدونم بگیم با هم تصادف کردیم بعد اومدیم دست بیاقه شدیم از اون تاریخ به بعد هم دشمن خونی هم دیگه چطوره؟ نره بعدش هم دادر و دودور را بندستیم و عروسی بگیریم مگه چه اشکالی داره؟ ببین موشنگ پسر من پسر بعدی نیست الان داره فوق لیسانس لیسان پسر خوبیه. لا با دختر من دانش موزیک. دختر تو که ماهه. یه پارچه خانومه واس خودش. باورت نمیشه از همون روز اول که دیدمشو مهرش به دلم نشست. گفتم هر طور شده این باید بشه عروس من. به خاطر همینی که خودمو کوچیک کردم اومدم پیش تو. به من چه؟ می‌خواستی نیای. اینقدر باز نباش. اینا برای هم ساخته شدن. یه وقت میبینه خدای نکرده؟ خدای نکرده چی؟ خدای نکرده چی؟ گارد نگیر اصلا برو خودت هم نیار که ما با هم صحبت کردیم یه روز ما سر زده میار خونهتون خودمون میدوزی و میبریم قال قار رو میکنیم میدون اول میبارم بعد می دوزن ضر و مثلا بلد نیستی؟ حالا هرچی؟ قبوله؟ پدرم عاشق منه تنها دلیلی که حاضر میشه باقو منصور جواب مثبت بده همینه فقط به خاطر دخترم بعد از عروسی هم نمیخوام چشم بهت میفته ب اگه تو بعد عروسی نمیخوای چشمت تو چشم من بیفته با من تو هم عروسی نمیخوام بیخته تو ببینم چیکار کنم نمیتونم دل پسرامو بشکنم فقط به زنمون بگیم به ظاهر من و تو راضی هستیم خودشون میدونن چیکار باید بکنن سلام آقایون به زنگو بزن آقا شوقی بفرمایید بشین از این طرفا بگم شو اخیش چاق شدی؟ ساخته به؟ این مال زمینخواریه یا رستوران داری؟ زمینخواری اگه چاق میکرد شما دوتا توی این جان جا نمیشدین ما هم هستیم نفع کجا هستی؟ با شما ستا دایی جوادی چیکارشی کارش کردیم؟ دایی جواد؟ مالا چند ساله ندیدیمش آره ما خودمون دنبالشیم که یه کاری واسهش بکنی. تو باسه چی دنبالشیم؟ مارمولای. آ هنوزم دو تایی به شیطون درس میدینا. خب یه کلاس واسه ما بزرین. اتباقا بغل دست شیطون یه جا هست. میتونیم بریم اونجا ببینیم. ردشو زدم. خودم پیداش میکنم برو قربونت برن. مطمئنن اگه پولی چیزی توش بود میام تو رستوران میشینی با هم میخوریم. من عاشق زمین اسکنم. اهل معامله‌ام. اینا هیچ‌وقت فراموش نکنیدا. دارم زمین چه روی داره بچه پر رو این خرمه کسه معرکه چی میگه؟ حرف ماف میزد ببین هوشنگ تو هم رو تو کم کن. آقا هوشنگ فقط به خاطر بچه هاست که تحملت میکنم اگه به خاطر بچه ها نبود من رفتم راستید جریان تصادف یادت نده هرچی رو زیادتر کنی خیلی راحت میتونم بگم حالم ازت به هم میخوره حوشن اگه به خاطر این بچه ها نبود مید سلام آقا منصوب سلام شامس جسارت همون به دیوار شمالتون بده؟ اتفاقی افتاده؟ چای بیارم خدمتون آه فهمیدم. بله به خاطر همون تصادف بود کم چیزی که نبود مردی که متقلب کلاوردار به من میگه بچه دواغو خب حتما تو بهش یه بد و بیرو گفتی بهش برخورده دیگه خونه کلنگی چه کار میتونی منتا؟ باشم مطالعه میکردم یه روزم که تو خونه یا همش سر تو روزامه است بده من اینا رو پروز پکن کمک کن پوست بکنیم میخوام ترچی بندازم من یه روز جمعه نمیتونیم بسرعت کنی نه خیر کمک کن ببینم شما اول تصادف کردین بعد آشنا شدین یه اول آشنا بودین بعد تصادف کردین چه فرقی میکنه مهم اینه که بابا آقا منصور مثل دشمن خونی میمونن بعدش هم مگه مهمه که شما پروانه خانم قبل از آشنایی با هم دیگه دیگر تو خیابون دیدین یا بعدش یا مثلا من و آقا مجید واق با... چه نطقه بچه همو کر میکنی بگو قربونت برم خب تو آقا مجید چی مادر خواستم بگم من و آقا مجید اشناییمون واسه بعد از تصادفه خوربونه دخترم برم ببینه چقدر نجیبه باباش رفته دیگه. نجابتش به مامانش رفته راستی هوشنگ من درباره این پسره خیلی تحقیق کردم و... باز خرف چون پسره بذار آلا پسر خوبیه همه ازش تعریف کردن به پربانه می بگم یه دور دیگه بیان خواستگارش خود تو نمیکنی نمی ها؟ من به خاطر و خوشبختی دخترم حاضرم خودمو خورد خاکشیر کنم نه خیل حق نداری بگی بیان. حالا اگه یه موقعی خواستم بگم بیان نمیخوام فکر کنن که راضی هستم میدونستم به خاطر خوشبختی دختر تازیره هر کاری بکنی باشه به پروانه نمیگم خودش دوباره پیشنهاد میده اما آخر نفهمیدم دشمنیتون به خاطر تصادف آه، تمومش می‌کنی یا نه انقدر نرو رو حسابم دیگه بس کن دیگه و تو خیلی خود ترسیدم آنون میخوای باور کن میخوای باور نکن هیچ داستان دیگه ای هم بین ما نبید اینا دیگه چیه؟ میخوام ترشی درست کنم از محتاب یاد گرفتم شروع کن تو رو شروع کن؟ یعنی یه جمعه من دست تو آسائیش ما نباید داشته باشی؟ نه نداریم اشباشو منصور یه کدومتون باید از خره شیطانگی پاییم اینجوری که نمیشه بابا جان، نه جفتشون بعد از خر شیتون میام پایین. قاج چه؟ نخوردی. بچه برو به درستت برس. هزار دفعه گفتم تو کار بزرگترو او نه اون هم اونم بساری جوش. خب بعد حالا نمیخواد پدرش با به درسن مشکل داشته بشه بشه؟ پدرزن، باره کلم. خوب برای خودتون میدوزین و میبرین. بابا جان میبرین و میدوزین. ما دلمون بخواد اول بدوزیم بعد ببریم مشکلیه؟ آه همین کارا رو میکنیم با هم مشکل داریم. مام شدیم عزیز شما. بچه این دور زمانه چقدر پرگو شدن هیچ وقت یادم نمیریم میخواستم بیایم خواستگاری تو اول به هشمتسازاد این همسای بغلی اون زمانمون گفتم بعد اون بند خدام به مادر خدابی همور مادر خدابی همور با ترس و به بابا گفت بابام گفت مبارک باشه درقی خواب اون تو گوشم. هم گفت حالا اسم پدرزنی چی هست اسم بابای دختری چی هست بابا جان الان عصر عصر اینترنت رومرریخ نبریه الان دامادا خاک سروق مریخ و برمیدار میبرم با مادر زنشون خاک بر سرت خاک بر سرت خانم تبدیل میگی پسرت از همین الان زن زلیج بوده. به حرف باباش پسرم یه روزی خودش با دستهار اومد خونم و گفت اومدم خواستگاری بابا هم یکی زد تو گوشش با بابا باباشون آها پس آقا جون زده تو گوشیش و نه با بزرگ خدا بیا مرت میدم چیشون؟ برو به درس بره. بره. حالا خانم نمیشه جلوی این بچه آبروی ما رو نابری نمیشه امشب زنگ میزنم به مهتاب برا فردشب قرار میذارم اتفاقا کار خیلی خوبی میکنی، ولی من خاصه‌گاری بیا نیستم میای اتفاقا خوبم میای من تو رو می‌شناسم تو برای یه دونه پسر تا کاری می‌کنی محتابم میگه آقا هوشنگم همین جوره عاشق دخترشه خیلی دلم میخواد ببینم اون مرتکم الان تو خونه نشیستره پیاز خورد می‌کنه یا نه توخ بچه‌ش اومد بیرون خانم آه خیلی دوست دارم ببینم این مردی که کلاورداره عین من از این کارا میکنه یا نه کور شدم کجایی مرتا بیا دیگه کی؟ بردنش؟ بله همون کسی که بردنش اینجا همون آقا بردننش به همین راحتی کجا بردنش خانم؟ باور کنید ما نمیدونیم آخه ما که فضول مردم نیستیم شما خواهش میکنم کنسدی خودتون رو حفظ کنید حطمئن باشین پیداش شی داری میگه خانم دایی جواد من و وردشم بردن من خوننسی ما حفظ کنم حالا جای بردنش همین دو پیش اینجا بودم. گفتم میبرشون برای گردش رو برش میگردونن. ما هم تا الان منتظریم. به من خانوم این آقای ریافش هم چی بیریفت صدای خشدار داشت. بله. عین شما بودم بله. در بینظری بی‌خبراں حیرونا در نظر بازی ما به خونه از این کشی دادی داری آباس می‌خونی. بگم شب رفتی خونه یه اسفان داره خودی دود کن اون چه شم آقا یه اینه بزنیم من چه خبر؟ هیچ چه برف مهی تا کمر هیچ چه جون. فقط این به سر شوقی آمده بود این خوشم و زروم نه. سلام آقا بوشنگ چون جوا سلام باجه بی علیکه سلام چیکار داریم؟ بوشنگ اینقدر بدخوردی نکن تو من نباشم هیچ کاری انجام نمیشه. باشه، فراموش نمی کنم. دیگه حواست به این منصور ناکسن باشه، فکر کنم دایی جواد خودش قایم کرده. هر چی تو بگی. دیگه. اوشانجم، در رستوران من همیشه رود بازه. هر و خاصی بیا با هم صحبت کنیم. آقا رسام، شیشلیکای ما حرف نداره. بیا پیشمون ای چاکر چاکرش شیشلیکات هم هستی. دمت گرم. ما رفتیم. خوش اومدی خوش اومدی یادگاری راستم جونم آدم اسلاوی آقا میگم آقا یه رفیق ی رفیق فقط تو این همه رفیقت داشته باشیا اونم این آقای چیه شفقه مشرق چیه شو، شوخیش همین آقا شوخی آقا بدبخت بیچاره با دو تا سیخ شیشلیک خریده آ جون آقا دو تا سیخ ششکلی نه نه جون آقا خوب گوشاده باز کن چی بهت میگم همین الان با ماشینا میری دانو بنگای منصور کلاوردار جا کشیک میدی هر جا رفت تعقیبش میکنی به من اطلاع میدی گنگکاری بالا نه ریا چشم آقا چو بخ نه خودمونم یه سر میزنم سری میرم برا ماجرا نخرید چشم خدا شبت حال چته سلام،, سلام سلام سلام خیلی به خودم فشار آوردم که دل این بچه ها رو نشکنم ولی چی؟ دل خودم چی کجا بوردیش یارو من خنگم چیه چی رو کجا بوردین منم کجا بوردیشو من من که نمیدونم راجع به چی رو کجا بوردین من شو بس کن گنگون یارو چه خیس یولاد نمی کشه هر چی جی بشه نگا صدا بالا من کاری نکن جلایی در همسای آمرو تو ببرم و بفتم کجا بردیش دیگه آمروزیه این بدتر تو دوست قدیمی یقی من آقا جون میدونی چیه من با این خانواده وصلت نمی کنم هره بابا اینگاه فرسانم دنبالش برو بیرون بابا یه باره باره مهتا باره بیرون یه مهتا ببخشیم پروانه جون نمیدونم چرا اینو اینجوری میکنن. خوشم. گوشم من نمیدونم آخر بعد بفهمین این قضیه چیه ببخشید خوارش بود خداحفظ با منصور هم مثل بابای من هیچ حرفی نزد باید خودمون دست به کار میشدی ای جدی میگی وا! آها خیلی خوب حالا بالاخره میفهمیم کی مجید میخوام بدن حافظیه خیلی خوب باشه اشکال نداره اجازه میدم آره بابا باباش باباشم اجازه میده من اجازه شو میگیرم برن اشکال نداره ولی بگو زود بیانا خدا رو شکل مادر ما ایداده با همدگر ببینیم آره شوار. نه نه شما نه خواهش میکنم شما بفهم نه شما بفهم باید من دوارت هم میدرم به من میخواستم بگم که باید یه فکری بکنیم چه جالب منم میخواستم خمینو بگم چه ده؟ بله بعدم باید رفتار مشابه مشتبه پدرم باید متاسفه نه خواهش میکنم فقط هم میخواستی بگیم؟ نه میخواستم بگم که باید با پدرمون حرف بزنیم چه صفایی منم واقعا می‌خوام همین رو بگم اتفاقا منو مامانم با بابا حرف زدیم در مورد من نه در مورد شما نه در مورد همون دعوا و خدمتتون رسیدم که هیچی بابا هیچ چیزی نبود منم مامانم با بابا خیلی حرف زدیم بابا فقط تو فکر بود هیچ چیزی نبود حالا می‌گین چیکار بکنی؟ م... بابای من یه شاگرد داره اسمش رستم من میخوام اول برام با اون حرف بزنم اتفاقا منم بابام یه شاگرد داره اسمش شمسیه منم می‌خواستم برام با اون صحبت کنم نه اسمش تو شناسنامه اشتباهی خورده هست آها خیلی جالب بود با واقعا شبیه همن یه شغل یه رفتار بله حالا چیکار کنیم بریم الان خب صحبت میکنیم باشون هر م... مشکلی پیش بیاد یا هر قضایی بود هم تماس میگیریم توضیح میدیم دیگه باشه بعد همین کار بکنیم دیگه کشتی و محافظا ورده بودیم یا فاال نگرفتیم اتفاقا من خورده واقعا بله شما یه نیت بکنین چرا هم من فکرامون شبیه همه من واقعا از این همه تفاهم دارم دیگونه میشم شما یه نیت بکنین بگی خیلی خوب بح بح چه فلی آمد دست از طلب ندارم تا کام من برایت یا تن رسد به جانان یا جان زتن براید بکشای طربتم را بعد از وفاتو بینگرد که از آتش درونم دود از کفن برای هم. در نظربادی ما بیخبران حیرانند حیرانند حیرانم حیرانم <تصفيق> من چنینم که نمودم دگر ایشان دانن ایوالا یادم افتی بود ماشالله ماشالله از کجا میدهست دیگم بلدیستم بهتی آخه هر دفعه میام اینجا شما همین یه نصفه رو هی میخونیم <تصفح> ماشالله با حوشی برکس بابا چه خبر بابا کجاست؟ بابا رفت این بغل یه ساخته اونیه ببینه بیاد اتفاقا با خودتون کار داشتم چونم دایین؟ یه سوال بپرسم من در خدمت هم. آغار استم شما آگم منصور می شناسی؟ یه انسور میشم این کلاه وارده رفیق بابات میکنم بابا تا ای خدایش آقا رستم. دید. چه آقا این کلاه واری کلاه وارده. اوه آغار دی چهارم دایی. پس از من دلیل دشمنی بابا اوشونم می یه چیزایی شنیدم. تو چی شنیدی؟ به ما گفتن سریع تصادف این دشمنی رو دارم ولی خود ما باور نکردی. نه دویزیم باور نکن. ببین یا خود چی افتشون کلاه واردن من جدیان شنیدم پای نفر سهونیم تو کاره چی؟ حدس میزنم و حدس میزنم بهش میگن دایی هم دایی ابرام میگن دایی جواد میگن همی فکر کنم این دومی از دایی جواد آره دایی جواد شما بعد از رو تماس بگیرید ما در خدمت شما هستیم خدا نگهدار جم کمش به هم بیارده است بح بح بح بح آقا شمسی سلام بلا بلا من شمسی نیستم شمس هستم لطفا شما هم بگین آقای شمس من, من که جواب سلام واجبه دو من که شمسی که با کلاسی مشکلی داره شمسی من که نگفتم بی کلاسه آه. با کلاسه ولی شما تشریف مسایی بفرمایید بگید شمس من کشتی اون تشکی که بابا کجا هست من چی میدونم نفرمودن کجا تشکیف میبرم امرتون خدمتت آرزم که من میخواستم یه کاری برای من انجام بدی بفرمایید. ببین من میخواهم تحتوی دشمنی بابا و آقا حوشنگو در بیارم آقا حوشنگو که میشنیسی؟ بله جسارتا رو به دیوان می شناسمش. خب چی خب؟ بابا من میگم دعواشون سری چیه میخواهم بفهمم چه میدونم؟ دقیقا نمیدونم ولی هرچی مربوط میشه به اون آقای پیرمردی که اسمش هستم دای جوانی خب حالا این دای جوان کی هست؟ نمیدونم خونهش کجاست؟ تو باغچه من چه میدونم؟ پس شما چی میدونی آقا شمس؟ ای آقا مجید شما گفتین آقای شمس؟ آره؟ یه یه چیزایی داره یادم میاد فکر میکنم که این دایی جواد الان توی خانه سالمندم باشه چون یه بار شنیدم آقا منصور داره باهاش صحبت میکنه که این اونجا بود از من نشنده بگیردم جدن داری میگی؟ الان مشکلت هر شد آره شمسی جون مشکل هر شد آقا مجید شمسی دیگه چیه؟ شمس شمس عزیزم پیروه آشقال میریزه سلام آقای مجی سلام حالوارشون؟ حال شما؟ از دوستای باباتم. چه خبر؟ خوبی شما سلامتی؟ قربون شما ممنون. دایی جوواد حالش خوبه؟ دایی جوواد دایی جوواد من نمیدونم کجا بردیش. خوب میدونم. بله؟ من میگم دایی جوواد نمیشناسم از من. نمیشناسی یعنی؟ بخیر. کیه تو این شری مرد نازنینو نشناسی؟ من متاسفانه نمیشناسم. ببین ماشین من اونجاست. بیا بریم آدرسمو بریم. بیا بریم. عزیزم شما میگی دایی جوواد میشناسی منو میگم نمیشناسم دروغ چرا میگی مرد اسم دست من دروغ چیه عرف درصفه تو هم بچه همون مارموله چی؟ بب... میفهمی ببین دونه دونه میکنم ها من دو تا رستوران دارم تو این شهر بچه گوش بده اگه خوب باشی و به حرفان گوش بدی میتونی تا آخر عمرت اونجا هر چی که دلت خواست بخوری فقط یه شرط داره بعد آدرس دایی جووادو به بدی ببین آقای رستوراندار من نمیدونم دوی جواد کجاست اگر می میدونستم به آدمی مثل تو نمیگفتم فهمیدیم؟ بست تو بینداز فرمام بچه؟ بچه خوابه الو سلام سلام چی کار کردین؟ فقط یه اسم بیدو کردم دوی جواد اتفاقا منم به همین دای جواد رسیدم شمسی میگفتش که بابا سراغ دای جواد در خانه سالمندان گرفته خانه سالمندان؟ موافقه بریم خونه سالمندان بریم فقط میشه لطفاً آدرس رو برایم پیامک کنید باش خدافرست دیبی حبو رهی سفر شدی اصنم بی خبر شدم آسمان بی خبر شدی اما فکر تو هنوز رنگ آسمون آمد سایه توی کوچه ها هوانت پاسمی زنم رین افسوس علی قرار این رویای مونده گام به سمت تو دوشا فکر میکنن بعضی از, از آدما چجوری دلشون میاد از این سرین کسی زندگیشونو بیان خونه سالمندان این چند می خونه سالمندانه که داریم بگردیم خدا کنه دایی جواد دیگه اینجا باشه کجا ها کجا کجا سلام سلام خسته نباشید اوه اینجا کسی به نام دایی جواد میشناسین دایی جواد جد بردن بردنش کجا بردنش نمیدونم اولی آقا اومد گذاشش اینجا بعد همه آقا اومد بردش ببخشی اسمشو میدونی چی بود؟ نه اصلا نمیدونم هیچ آدرسی ازشون ندارین؟ آدرس؟ دارین؟ نه نمیدونم فقط... فقط فقط چی؟ آقا دنبال یعنی فرمیگرش کرد دای جوان کنه منم دلم سوخت. باله دلم سوخت. خب بعدشی؟ بله دلم سوخت. خب بعدشی؟ بعدش؟ منم بهش معرفی کردم کدام شادی یکی بتونه به پیر مردی بیچاره کمک کنه بالا بالا دلم سوخت خب میشه شما تلفنشونو بهمون رو به بدین بله چرا ندم یه لحظه اجازه بدین یاداش میفرماییم سف نوسته نیویده من میزنم من میزنم دست دردک ببین آقا اون آقا رو می‌بینی اونجا آ چه ماشین قشنگی حالا ماشینشو ول کن خیلی آدم کثیفه میخواد از این پیرمرد سوء استفاده کنه مال و اموالشو بکشه بالا یه وقت آدرسی تلفونی چیزی ازت نگیره ها بقولو ببین این پیشنهاد شیتیل میتیل به داد قبول نکنی هواش من علشیتیل میتیلم جواب فری او بعد در پیشنهاد پیش‌ناده رستورانم داد قبول نکردم هیوان نخورده هستیم نه بابا خیارت راحت باشه آفرین شما انسان شریفی هستین دست در نکنه مواظر خودتن باش خداحافظ شما خداحافظ خدا خدا. شما باید اجاز باش خداحافظ شما, خدا شما. خدا من میگم نگار خودم شما باش صحبت کنید بله. که آقا بوشی نمیخوای به ما باگی ما رو واسه چی هرشی آوردی اینجا؟ نبهن افتاک تو کاری که تو باید میکردی من کردم زکی آقا چیکار چی؟ کار من نکردم؟ گفتم به من؟ آقا, آقا جون اومد اومد تو بیاند اه بگم آقا جون یه به سر منصورانی سر تو بید بایی رفته بری آقا جون بیا اینجا بیا رويش اي بابا چرا دار نميارم شو چکار میکني آقا جون سرت بيار پايه آقا اوشي ببین اوشي زهر بار يداف بنو ب ها آقا جون سر منصور چی چکار میکنين بذابينم چي كار میکنه آقا اين بي اينجا بذابينم چي كار میکنه دي بي نميخوام نميخوام آبچي نگارم اینجا چخ جون ايلا بر تو منصور بالاخره كارو گفتي کردی. حتما خلقش رو بذارم کفه دستش ببریم یا, یا. یا آشی بپذرم بدا آشی چیه از آقا جون بله اه سلام اه ببخشید اه میشه ما یه لحظه بیایم تو یه کار کوچیکی با اتون داریم چیه اون خانم به من گفتن که گوششون سنگین بلند بلندتره سلام ببخشید ما میشه یه لحظه بیایم تو باهاتون کار داریم من پسر آقا منصور هستم ایشون هم دختر آقا وحشنگ هستن که خاطرتون باشه مگه دروارین چرا در باز گفتم که اجازه بگیرم ازتون قد چی بگید در باز هست من میگم اجازه بگیرم بیام تو میگم مگه, مگه در تو نیست گرفتمه میام الان تو میاییم الان تو بفر بوشم این شفا میده مم. مم. سلام دایی جواد سلام دایی جواد ما بچه های آقا منصور و آقا حوشنگ هستیم داد میزنی؟ اگه نمیمیستم دارم به این خوبی با اجزتون رو بشینیم بچه ها برام خریدم آه چه عرق باار این تقویت کننده قل و روغ و دیگه احساب آدم چقدر آروم میکنه من هر روز از این میکنم همیشه آره این هم پونه این هم خیلی خوبه این زد سیاه صرفه هست بعد باد چکن هم هست چیدی دیگه چی بسرد بگم آهان شما گفتین کی هستین ما بچه های گفتن که سمک گذاشتن آها بباشت من منذارت میخوام من مجید هستم به سر آقا منصور هم نگار خانم هستن دختر آقا حوشنگ بخی اینا که گفتی منم میشنستم یا نه نمیشناسین آخه به ما گفتن آقا منصور شما رو وردن اینجا یادم من منصور و بچه های خوبی هست ولی من تا حالا شما رو ندیدم چرا؟ نه خیر سعودت نداشتیم چی نداشتی؟ منظورم این که افتخارش رو نداشتیم حالا ولشکوندهی جان میخواستم ببینم شما چه نسبتی با باباهای ما داشتیم راستی گل اون ماست چی خوب بود؟ خودم یادم اون خون رو تصمیه میکنه آره گفتی روز چی اومدین اینجا پدر من و پدر آقا مجید یعنی آقا هوشنگ و آقا منصور با هم یه اختلاف خیلی زیادی دارن اختلاف که دیگه در حد جنگه هیچکس هم رو نمیدونه ما کلی گشتیم تا شما رو پیدا کردیم فقط بپرسیم علتش چیه توستی گفتی دختر کی هستی من دختر آقا هوشنگم هوشنگ توستی میونه بابا دو منصور بهتر طرز شو شما میدونی چرا اینا با هم دشمنی دارن توستی من حواسفرتی داره همه چیزو فراموش میکنه حاز یخت یادم میاد یه هویی از خاطرم میره. دوره یه هویی میاد به خاطرم باز فراموش میکنه. آها منظورتو فراموشیه دیگه؟ نه. فکر کنم معالزه قند داره. چرا اعتراف میدی؟ وقتی گفتی دختره کی هستی؟ ای هی نوارو میزنه از اون. هیچ در مورد این اختلاف بابا هامون یادتون نمیاد؟ راستش چه یه چیزایی یادم میاد. یه مدرسه با هزار تا بچه. مدرسه؟ مدرسه کدوم مدرسه؟ ببین عروس من میشی؟ من پسر خیلی دارمو همون آقا البته اگه مهریت بالا نباشه. ببخشید دایه جواد شما غیر از بچه و مدرسه و این عرقیجات اینا چیز دیگه یادتون نمیاد؟ بس اسمیت چیه؟ خب دستتون درد نکنه دیگه مامو رف کنیم. شاید چیزای دیگه یادشون بیاد. نه دیگه من بعید میدونم چیزی یادشون بیاد دیگه. بریم که دیگه مزاحمشون دستتون درد نکنه دایی جواد. داست شما درد نکنه پوجیست سلام سلام شماها سلام خوب هستین من نگار هستم ایشون هم آقای مرجیدن شما هم بعد روی خانوم باشین درست بله خودم هم دایی جواد رو دیدیم؟ بله باشون هر صدیم چقدر هم کریم و دوست داشتنی هستن ازاتون از از نخواستم عروسشون بشید واقعه <تصفح> چرا یه چنباری ببخشید بجز ما آقا منصور کس دیگه هم میشه دایی جواد میان؟ من که کسی رو ندیدم خب پس که آقا منصور دارن از دای جواد نگهتاری میکنن چرا اینجوری؟ اه خانوم دستشون درد نکنه ممنون خیلی ممنون مرسی من نمی چونم قبول کنم دستشون باید نکنیم بگیریم دیگه دستشون در نکنه ممنون. ام... روی روخم چرا در بازه؟ آخه دایی جوواد گفته در خونه‌اش باید همیشه روی مردم باز باشه. ناراحت میشه در خونه بسته باشه. چه جالب اینو فراموش نکردن. اسم عرق جواد هم یادشون نرفته، فراموش نکرد میخواین روی خانم ما تو نشه شما بفرمایید. من با هم دیگه شام درست کنم. دایی جوواد ضعف میکنه خدا نگہداشتتون. خدا دستتون درد نکنه خدافظ. من میگم چرا بابا اینا دایی جوواد از ما پنهون میکنن؟ مگه کار بد میکنن؟ کار خیره. اینگه میدونم مهمتر از اونه که چرا داره از همدیگه میدوزدنش کاش بیشتر بشه دایی جواد میبونیم شاید یه چیزایی یادشون میومد. ادای او جواد که کمک نگه ایش گره را که بریم عصف داری آف میدی؟ عصف نقا عصف آقاچون حالت اساسی خراب بوشی یا ما هر کاری کردی ما گیر دادی؟ به دلیل قال من خرابه بس یه کاری بکن که اصلا وجودت معلوم نشه اینجا. باشه ها، باشه. <تصفح> عمرت یادرف بزنم. جنّت، بهایش سرچوری. حالا ناز نکن. عصب تو آب بده بابا. ای یارو مشفق شفق کیه شادیه؟ اون اگر یه وقت ببین پرش به پرت بگیره خودش اببین بردیه امروزا شوگی؟ عصبانی هم هستی؟ نراحت هم هستی؟ نه؟ کجاست؟ اونا هاشو جاقاشونه اونجاشونه تو ماشینه ششسته بس چون خفت خون گرفتی تو؟ ای بابا یک کاری میکنی عمرم باید قرد کنم آقاشونه اه... تو از جون من چی میخوام چرا گوره تو گام نمیکنی بری چیه هوشان باد نخنف چه جدی خبریه آقا جان من از دایی جوواد خبر ندارم چرا حالش نیست میدونم آوردینش خونه سالمندا منصور نامردم اومورد وزیدش اف که نجبونش خیلی عصبانی بود نمیبینی زیر چشمشو چیکار کرده بچا نمیرو بنگای منصور پاشدی اومدی اینجا هوشان بیا دست بدیم به دستم دیگه میدونم با منصور نامرد چیکار کنم من دستم تو دست آدمی بی‌آبرویی به چطور نمیذارم برو گام شو زیر گوشو من میزنی؟ من بیابه من نامردم؟ بفرمایین آقا بوشن؟ نخه نیستن شما؟ معلومه که نیستن کلوبردری مگه وقت نیزاره بیان خونه یعنی شاقا معدب باشین؟ باشه خانم من بیعده هم ولی بدونید آدم بی عدب و زندان نمی بره این کلاورداره که جاش تو زندانه آخو اوشنگه تجربه شو داره میگی نه از منصور بپرسید شما اشتباه میکنی نه قا اصلا شماله اشتباه گرفتی شوهر من هیچ زندان نبوده الو بفهمی سلام خوشنگ چی شده متا ببینم تو تو زندان بودی زندان اه... من زندان نبودم چی وافته یه مرد دیوانه زنگ زد اینجا گفت خوشنگ کلا بردار گفت کلا بردار بعدم گفت زندان بود غلط کرده هرچی گفته من تا حالا پاک تو کلانتدی منم باور نکردم و باور نکردی چی زنگ زدید رو رفتی رو اصای من ام... خب آخ... میدونی من من چیز بگو خجالت نکشمت ها بگو بگو بعد از سی سال زندگی من به شوهرم شک کردم نه ببخش ببخش نوشم آیه شدونم نزن، نزن، هنشی نزن من به احترام موی سپید شما قولی که دادم پای قلم هستم من با سابکونه صحبت میکنم، قول به شماها میدم. یه تخفیف ویژه و توپولم برای بگیرم خوشبختان سابکونه آدم راهیه گلش میخواد این معامله انجام بشه شما برو خیالت راحت باشه هر کاری هم داشتی من برخدمت زنده باشید کیالم راحت بشه راحت راحت آخه. برم آقا منصور ما یه هفته دیگه بیشتر وقت نداره اونم مال شماست قربونت برم برو برام اون خدا مخمونو پکوندی ا؟ ویوچ داره خفه‌مون میکنه آخه تو مغازه کسی دکپشو واچ میزنه برو اون پوش بزن شاگرد به این فینتیل لابی ناییده بودن آقا منصور شما چرا عصبانی میشی جسارتاً روم به دیوار آراستگی نشانه شخصیت انسان هاست کفش یه مردم نشانه شخصیتشه حق با توه ولی نمیدونم که نسمت دو گرشده شمسی آقا منسوب خواهشم بله الو منسوب جان منسوب ببین یه مرد غریبه زنگ زده خونه آقا اوشنگینا آو. به محتاب گفته که شوهرش کلاه برداره که چی؟ قبلا هم زندان بوده یه باش طرف نوبر دیگه هم زده زندون؟ خیلی پروی بلند شد اومدی مقاستشون من پرویم هستاگی ستو بیکشتم جلو چشت من صورت ببین من دیدم چجوری هستونست میشه چون چشادم تو یکی عفت نزن اینجا معنه کاره صدا تم میارید اجازه بدیم من پیشتر بیدم با هم حرف بزنیم گفتگو کنیم آیا چیز هرتفت نکم بینیم بابا آقا حوشی بفرمان ببینم باشی جریان زندانی به زن من گفتیم واح آخه یشی جریان زنده یشی. من جریان زنده گفتم. مثل که پای خود پیره. منصور باشی چی چای منو برداشی بردی تو خونه دایی این بسته من. آه من از آنچه من انجام دادم نمی‌خوام. آه من از آنچه من انجام دادم نمی‌خوام. آه من من چیزی می‌دونی؟ من گفتم گفتم ان کنیم. این آواز گوشزده برد کنیم، من گوشزده برد کنیم. گفتم من آتو تعماله کنم تو هیچه چگار میکنی؟ از چی امایدی؟ بابا تونید اعوامی کنین؟ تو دخالت با... نکن مجید جان برو عزیزم ما خودمون بزرگتر را حلش میکنم آقا شما را را برو. را را را برو عرصر با بابا من سور خوب گوشت را باز کنم بید چی میگم؟ عظیم به بعد دیگه دور دوروبر من نمی پلکیم ببین ببینه آقای اوشنگ خان سبر ما هم حدی داره. ولا ببین بابا شیر بی سر دادم تو آقا منشور اینو دارن رو اعصاب من را میرن ها آقا چه با اجازه خودش خاطر آقا منصور با اجازه اجازه بده بابا ببین بابا ولش کن ولش کن میگه به تو میگم شو یه چیزی بریم مفت نون، آبرون رو نواردی مولا شو مولا این چطور نزده اما بود؟ بیا چه کار چه کار چه کار تو ال دعوام بودی من نمیدونستم آقا من سو جسالتا روم به دیوار دعوا کاری بسیار بدیه ولی خب بعضی اوقات آدم ها عصبانی می دیگه میگم حالام عزیز، برم چای بردم خدمتون. اگه ناراحت نمیشی؟ <تصفح> نه، الان براتون چای میارم. <تصفح> باز که تو پیدت شد صدا بیار پایین من اومدم بشینیم با هم بیار کلام اختلاف کنیم نه اومدم که به هوا کنیم که چی بشه؟ ببین بوشن من تصمیم گرفتم امشب راجع به خودم یه چیزایی رو به بچه ها بگم خب و دلم میخواد تو هم راجع به زندان بگی بگی من زندان نبودم من پنی روز بازداش بودم که اونم باعثش جنابالی شدید بواسش خودت بودی سادگی خودت بودی حالا هرچی بوده بالاخره نور رفته فقط یادت باشه کار من نبوده من تو دروغ نگو ببین تو چه بخوای چه نخوای این شده من تصمیم گرفتم یه چیزی سرهم کنیم به وجواب بگیم یعنی یه چیزی بسازیم خب بساز یه چیزی بساز که خیلی پسسوازیت حق نداره مثل اون تصادف مسخری که ساختی او رو بساز این دفعه باید تو یه چیزی سرهم هم کنی فقط یادت باشه اون چیزی که میگی دای جووادم توش باشه توازن کردی حرف اونم باید یکی باشه نه کمتر نه بیشتر واسه دای جوواد چی میشه جاش عوض کردی حل آدم نمیتونه تا آباد رو پنهون کنه بالاخره خودشون نشون میده اما ظاهرا بابا و آقا منصور تصمیم گرفتن قبل از اینکه این, این گذشته زندگیشون خراب بکنه خودشون در موردش حرف بزنم بهت قول میدم یه جای خیلی خوب ببنمش که دست هیچ تمهکاری بهش نرسیم مطمئن باشم شک نکن اینجا رستوران منه هر وقت که دلت خواست میتونی بی اینجا غذا بخوری. دسته دار نکنه. Hän itkois mu medeli? Koodaavissa. Mauzaa kuodit baash. بزرگی مثل شیراز یعنی ساعتها گشتن و گشتن از محله‌ای به محله‌ای دیگه اما همیشه جوینده یا بنده نیست مخصوصا اگه آدرس اشتباه باشه از تو ما با هم دوست بودیم تو تو تو تو تو تو تو تو داشتیم من تو یا کلا نمیدونستی. خیلی زندگی اومو شبیه هم بود تا اینکه مسافرت لرطی پیش اومد همه من توی ماشین بودیم من منصور با پده مادرامم ماشین می افته دو دره پده مادرامم کشته یعنی منوشنگ از پسچگی تو فرورشگا بزرگ شدیم تصمیم گرفتیم وقتی بزرگتر شدیم پول دار بشه اینش بود که زدیم تو کار ساخت و ساز کارمون گرف سرمامله ی زمین که بیشت کلوبردری بود تا هم مامله ما نمیدونستیم کلوبردری بشه دستگیر شدم منصورم بود اما اون تونست قصر در تقصیر خودش بود ولی همه چیز انداخت گردن من من تبرعه شدم یعنی همه چیزی رو سر اون معامله از دست دادیم از اون موقع به بعد کینه ای من رو به دل خودش گرفت یعنی شدیم دشمن خونی هم بگیم به خونش نشنم نمیخوام هیچ وقت یا فیلم مردی رو ببینم از شما میخوام که من رو ببخشت مخصوصم تو مهتا که گذشتم ازت پرون کردن میدونستم یتیمی به هم گفته بود اون زن و مردی که اومدن خواستگاریم پدر و مادرت نبودن اما ای کاش راجب گذشته هم حقیقت رو گفته بودی راجب اون معاملهی که میگه هیچ گناه نداشتی من فکر نمی کنم همچین بی گناه بی گناه هم بودی من منو ببخش مهدان جبون بودم یکاش کاش برم اعتماد کرده بودی و راستشون رو گفتی واقعی شرمندن پس این قضیه دایی جباد چیه؟ ما پیش دایی جباد کار میکردیم پیرمت بند خدا خیلی به ما کمک کرد این بود که تصمیم گرفتیم وقتی اوزان رو به راه شد جبران کنم بعد از این همه سال؟ تازه متوجه شدم که خالش خوب نیست واسه همین اردم شیرازی که ازش مراقبت کنم چرا از چشم آقا منصور پنونش کردی؟ من چشم دیدن اون مردی ندارم بسه امینه مجید از شوقی صاحب رستوران نگین چیزای دیگه ای شنیده بود که به من نگفت فقط گفت ولی من هنوز بهشون شک دارم من بابا رو باور کردم حالا هم میخوام آشتیشون بدم چجوری؟ اونو بذارید به احده خودم ولی شما هم باید بهم کمک کنید باشه آره آره دارم را میبین ببین تو پنگ نقیدی کنه جما لباستانه به گوش آماده بود براو. به من آدرس اشتباه میدی من میدونم اتباه نامی خاتیک چی میشه 20 برابره باقی بیشتر میکن چه بوی پونه خوبی هم داره. سلام سلام سلام, سلام حالت خوبه؟ مرسی, مرسی. نرفتی؟ خب من شهران درمه منتظرم من دیگه برا برو برو شما دایی جواد نوکره دای دای تا مخلص دایی جواد دایی جواد نوکره دایی جواد مخلص درم حوشنگ ماشالله چه رنگ و روی؟ چه کریتین خوبی دایی جواد؟ آره مرونه این کسرهای خودم برم نوکره تا خب دایی جواد چطوری؟ خوبی؟ ای ندارم برای چنگ شد اینجا راحتی مشکلی نداری آخه این چه سوالیه میکنی معلومه که راحته بهترین خونه رو برش گرفتم هم رنگ روش باز شده هم معلومه سلامتیشو به دست مردی میگم دویش شواس حالا جوش شواسد اومده سر جاش آه. به ما میگی سنده کجاست یا نه بکنم کنم یادم آه بارو که بارو که نقطه که نقطه بگه بکنم من شما هاره که چی؟ سند، سند کزی؟ یه یادم اومد یه هم الان مثل یادم اومد گوشن من برم چویدم کنم حالا, حالا سنت سند میاد همیچی برا میشون حالا حالاله حالا ها حالا رو درختی داریم یادی کنیم برای، برای، برای برای، واقعاً با چی کردیم؟ بعید باید می دونم او ناسلامتی آلزایی داره پراموشی گرفته بردی بوشن ترافیک روست بابا بریم تو بازه مخلص دایی جواد رویه خانو رویه خانو شاید دای جواد خواب باشه نیستن که سرسداشون نمیاد دایی جواد مرزی چیه چی رو اینجوری نگام منصور باز شروع کردی چی چی رو شروع کردی میگم نکنی کار خودت به جون دخترم اگه کار من باشی نایده. به جانو یه دونه پسرم که نمیخوام دنیاش باشه من کار من نیم خیلی خب بابا خیلی خب یه زنگ بزن این دختری چی بود اسمش رویا خانم برو ببینیم میدونی که جاس برو من شماره شکه ندارم دخولت اینو دعوت کردیم پراسواری دایی جوادرش آج شماره شو نداریم بابا شوارش اومد از دونه حاله کد منم استخدامش کردم دیگه شماره شکه نگرفتم که بچه موزی با اه بیشبتی فکر میکردم یه نفر داره تحکیمم میکنه کی شوقی خانمی پولوزه خانم. صندوق درشبه. میگم خدا بیشتر بده سلام, سلام. باز شما دوتا برید بیرون دایی جوادو کجا قایم کردی اوشه من نه زمین میخوام نه سند فقط گورتون رو گم کن هوا بشه بده درست صحبت کنم برید گم شد بیرون خالی وزی در نیار جوادو باره بده به خدا زمین میزنم پلیس برید گمشید بیرون ولی من حقیق طوره میزارم کف دسته اون یکی چشه تا بریم دیگه برید گمشید بیرون بیگم بیوری از تاریس خونه سالمنده اینه گهبانه میکو رو اون بلده اگرن نبود فکر دیگه میخونی من کار دارم از خونه زنگ زدن گودن زود بیا خونه خودت بارون اتفاقان از خونه ما هم زنگ زدن گرسم فلتور خ فکر نکن دو این دنبال دایی جوادی هم سیم خبری ها من دفتر پسند میدیم ها او چه خبره چیزی که زیاده دختره فکر کرده علی آباد شهره بس خرم بودی در بودی میتنید چی تو الان داری خیال خودمون پدر مادرهامون رو بردیم پارک کاشتیشون بدیم اقفا عجب نایی مارو بردیم دفت درد نتونی که هوایی داری آنه میجه نفس بگیشم الان من گرفتانی دوزار پنگزار شدم یادم رفته ارگیزی هایی هم وجود داره خیلی بالی خوشه این با قبلا اینجا اومده بودیم برای مشاوره یادت نی؟ مایی که یادم نمیاد. مشاوره؟ شما؟ آره آره راست میگه مشاوره است. شهر داری اینجا مشاوره خانوادی زدی برای این آدمایی که اختلاف دارن درست درست من که تاله نیدم شما ماما هم اختلاف داشته باشی اختلاف که نه ولی مادریتی که میشه زیگاهی اوقاتم چون کشکلک میشه من کشکلک میشه بس من کشکلک میشم ببینم کی سر آسیتون یادش رفته بود داشت خونه رو سرم خراب میکرد، چی بود؟ خب یه چیزی رو هزار دفعه بهت میگفتم یادت میرم من فکر میتونم به من اهمیت نمیدی خب من هم اصابانی میشودم آره بابا بیم بشینی، مه... استراد خونی بابا بابا بیاییم بشینی مه... نگاه بله با بابا این بله تو می دونی اینجا امروز چه؟ بر بابا می از صبح گرم تازه نداشتن. بیا بریم. ما تو باشیم. بابا، خواهش کنم نرو. تا کی میخوایی اختلاف ادامه پیدا کنه؟ حیف نیست. بابا واقعا من سر از قبل آمادگی آشی کردن و داشتن. چند دقیقه بعد <تصفيق> <بس> <مع> <مع> <مع> مجید چایی رو بریز <مع> در اون بابا فقط <مع> خودش میخوره <مع> بابرتون نمیشه انقدر برای من سخت بود با این حوشن خالی بند آشتی کنم اما فقط خدا میدونه ولی چه کنم که پایین دوتا جوون وسطه وگرنه عمرم با عاشق می ولی من عاشق منسونم واسه همینم برای من راحت راحت مزقره میکنی؟ نه پس فکر کردیم واقعا عاشقتم ببید چی میگه؟ بگه <تصفح> عاشق <سلاشی. تصفح> سلام. سلام سلام در خروجی از کدوم بره؟ از اون بره از همین مسیر که اومدیم خانم جان از اون دری که اومدیم این پارک سه تا در دارم یکی جی چی چی از اون بر؟ ما خودمون از این بر اومدیم خ بله سلام بله شناختا ببخشید شما شماره من کجا بوردین آها بله نگار خورمم و من به شما زنگ زده بود بله بفرمایم من, من تا نیم سایدی خدا میرسونم اونجا خودحافظ خودحافظ بدروا. من ببخشید بابا من میتونم ماشین یه لحظه قرض بگیرم؟ اشتمادر مادر میشین حالا دوره همین من یه کار مهم برام پیش اومده. ببخشید بعد برم جای کار. برم؟ برو بابا جون. باکشم pore من هم اگه خدا قسمت کنه اون شیخ ماشین داره میخوام بریم فسا یه دوری بزنیم. باشه اشکا نذار. فسا بره چی حسین؟ حال میخوایم به یاد اون روزا آه. بریم فسا تو اون <تصفيق> دوری بزنیم. خاطره زنده کنیم. مام کنه. پس من رفتم خدافرست خدافرست بسافرات مردونتونی میشه خانم نگهبان خانه سالمندان با تهدید مجید حاضر نمیشه نشونه ی رویا رو به بابا و آقا منصور بده بابا اینا هم به طرف فسا به راه میافتن بابا و منصور به یاد ایام قدیم حسابی رو گشتن انگار دوستی های قدیم یه جوری دوباره زنده شده بود دنبال دای جوادم گشتن اما نتونستم پیداشون کنن و بعدها به هم گفت دیدن شرکینه ها و تمه ها رو تو دلشون از بین برد. حتی اینو هم گفت که دوست داشتن دایی جواد رو پیدا کنن و این بار واقعا ازش مراقبت کنن. راست تو دروغش با خودش. باستو چند روز بعد از اینکه برگشتن اومدن خواستگاری. اون مراقبت گفتم اون واسه مشکیه رو بپوشن. والا خوبه مناسبه. کجا کجا هول نشو کجا. پوشنه دیوار ایراد خوشن خواه سلام ارز کردم سلام خوشن خواه منصور هستم اجازه می فرمایی می فرمایم بفرما <تصفيق> <عش> چند ساله میخوادیم در عوض کنه دریق با از پول بتونش برنا می می از ما بود با ش چه عرز عروس گلی؟ شالم باورتون نمیشه. من از روز اول که این دختر رو دیدم و مهرش به دلم شه نمیخواام چ روش بگم گفتم دختر کجا بود؟ این هوشنگ خالیبند کجا اتفاقا خوب گفتی منصور. من وقتی مجید خان رو دیده گفتم آقا این پسر رهنه ها خوشیم این کچه های منصوره کش و کلو نه داده داشته بابا بابا می‌کنی بابا یه سپراز برای من می‌دارم سپراز؟ یه خور سب کو می‌فهمی شما دوتا چی با هم پش پش می‌کنی؟ ولشون کن خانم، مثلا تو حال خودشون باشن دیگه تو خودت یاد رفته دفته بودم خاصی کاری ولم نمی‌کردی یا پش پش می‌کرد و بللت می خانم ب دلش میخواد بگه من اینو میشناسم از بچگی هاش بزرگ شدم او جنگ خالی بند خودم بزرگش کردم <تصفيق> خودت هم دست کمی نداشتی گل گفتی خانم دستت درد نکنه این درسته آقا تویتی گل گفتی نمیخواد بریم سر اصل, اصل مطلب اصل مطلب همینه که دوره همین میخوایم یه کاری خیر انجام بدیم خیر رزینه دیگه بش قله دیگه هل... فقط اگه اجازه ببددی من قبلش یه ای رو براتون تعریف کنم. خب عزیزیم پسرم الان چه وقت قصه گفتنه؟ ما برای کار دیگه اومدیم اینجا اتفاقم بعد نیست بگو پسرم چی بخار بگی؟ بگو. خب مادر جون این قصه در مورد چی هست؟ قصه دو تا کلا بردار <تصفيق> <تصفيق> خب همونجوری همون جوری که بسیتون گفتم یه سپرایز براتون دارم قصه کجا شروع میشه از جایی که دو تا رفیق تو جوانی میرم پیشی آقایی کار میکنم به نام دایی جواد. دایی جواد کی می‌شناسین؟ اصلا ذهنمو چشوه. قصه دایی خیلی شنیدیم اگه قصه جدید داری از یه جا بگو. وگرنه اجازه بده ما بزرگترو به کارمون برسون. درسته اما ناقص من میخوام کاملش کنم. واسه اینکه خودم بفهمم این قضیه چیه. همه جا رو زیر پا گذاشتم. تو این حرفو این است مادر؟ بابا جان شما یه لحظه اجازه بده حرف ما حرفمو بزنم. دا جواد که یه خیر مدرسه بود بعد از یه مدت حسابی به اون دوتا جوون اعتماد میکنه و اختیار زندگی و مال و امبالشون میده دست اونا. اونام هم کلاش بر میدارن و میزنن به چاک. پای پول هنگفتی در میون بود. بابا باقا من سود دستگیر میشن. دایه جواد دلازو کم که نمیتونه اونا رو تو زندان ببینه؟ میگه اگه بال اون برگردونه حاضر میشه رزت بده. اموال برمیگرده اما به قیمت آسپاس شدن دوتا جوون ما. دایی با بازم دلش می‌سوزه و سرمایه در اختیارشون میذاره ولی ازشون قول میگیره که اوضاعشون بهتر شد یه مدرسه بسازن. یه قول خشک و خالی بدون هیچ نوشته و سندی. آقایون میان شیراز تشکیل خانواده میدن، کار کاسبی را میندازن، دای جوادم که فراموش میشه. تا اینکه آقا اوشنگ میره فسا، دایی جووادو می‌بینه. و می‌دونه که دای جواد اطراف شیراز زمینای زیادی داشته بدون هیچ بارث. دای جوادم که پیره مرد 80 ساله فراموشگاه چی کامی کنه؟ برش میداره میرته شیراس دست برغذاب بابای ما متوجه میشه رویا خانم تمام حرفای شما رو اون شب میشنه بعد از اینکه شوقی وارد خونه میشه با اسای دای جواد زخمی میشه و در میره رویا خانم دای جواد رو میذونه میبره خونه‌شون بعد به من زنگ میزنه کل قضیه همین بود البته یه چیزی هم هست همه ها وقف شدن شاید باورتون نشه من بارها دنبال مال دای جواد داشتم خیلی جارو گشتم ولی چگونهم که پیداش نکردم یعنی میدونید تصمیم داشتم دایی جوادی برم پیش خودم نگهش دارم ازش مراقبت کنم یعنی لیاقتشو داره ما حتی میخواستیم بیه مدرسه بسازیم درسته دایی جان دایی جان درسته چه نمیشنه هم براش نیست چه دختر گلی عروس من میشی به جواد رو وردیم شیراز بابا آقا منصور هم به قول خودشون عمل کردن بابا بعدها واسه تعریف کرد که تمام میتونه چشم آدم رو پور کنه همون که چشمای اون و آقا منصور رو به روی همه خوبیایی های دای جواد بزد بابا اینا با ساخت یه مدرسه تونستن بخشی از خطاهاشون رو جبران کنن بابا اینا با ساخت مدرسه تونستن به قول خودشون عمل کنن و گذشته رو جبران کنن بعد از اون ماجره ها همیشه فکر میکنم شاید اگه اون روز مادرم برای کمک به پروانه خانوم وای نمیستاد شاید اگه اون روز اون تصادف اتفاق نمیافتاد شاید اگه موفق نمیشدیم رویا رو پیدا کنیم و خیلی شاید آیا دیگه همه این ماجره ها اتفاق نمیافتاد اما همه این ماجراها ها واقعا اتفاق افتادن شاید فقط برای این که یه ده بچه کلاس درس داشته باشه خانم شمس خوش اومدی این طرف چه جزاره شرون به دیوار من آقای شمس هستم آخه ارنگوهب نشتن آقای شمس ببخشی دا میزنی در میلی میزنی در میلی من زدم شما خودتون پرد شدیم بیرون حالا هرچی، حالا هرچی ببین کتک زدی و حالا کتکت بزنم اونم نه تنه چند نفری اقاییم جزارتا برو تو من باید برم, برم. بفرمو برو بفرمو اه. چیزی را داشتید آره داشتم چیز میگه من یه پیشنهاد دارم پیشنهادها بی شرمانه و شرمانه نه نه نه مذاکره میکنیم با هم دیگه مذاکره بکنیم باشه ما میتونیم با هم دیگه یه بونگو بزنیم دو نفری با هم دیگه کار کنیم کاش خیلی خوبی هم میشه لاشاری بریم نه نه نه اجازه یه رستورانم یادرا هستش می همه با هم بریم نار بخوریم مهمون من میگم که شیشلیک داره میگه شیشلیک داره اونجا شیشلیکم داره با هم جوجی می‌زنیم <laughs> جو جو. ش... او... آره ما عله جوجی می‌ماش شما چی جوجو میگه میگه شام همه هستن دادا قدمشون رو تخمه چشام میگم دادا شوت یخچال آره کی اوناتا چرویا داشتی وقتی که سرت رو شونا حالا برو من تو گیرم من تو میرم نشده میشه من تو سر بروم من تو گیرم من تو گیرم